فصل 23 وقتی به خودم آمدم، هنوز توی بالکن بودم و به خیابان نگاه می کردم. دستم را به نرده گرفته بودم، زانویم به شدت درد می کرد سکه یک مارکی که پایین انداخته بودم فکرم را مشغول کرده بود دلم می خواست آن را داشته باشم ولی نمی توانستم به خیابان بروم چون هر لحظه ممکن بود لئو از راه برسد بلاخره باید زمانی از خوردن آلو، خامه و دعای سر میز فارغ می شدند نمی توانستم سکه را ببینم خیلی پایین بود و فقط در افسانه کودکان سکه ها چنان برق می زنند که آدم آنها را پیدا می کند اولین بار بود که به خاطر چیزی چیزی که با پول ارتباط داشت افسوس می خوردم. این مارک دور انداخته شده دوازده نخسیگار دو تراموا یا یک ساندویچ سوسیس بود پشیمان نبودم ولی با افسوس به پول هایی که برای اختلاف بهای های بلیت درجه یک و دوی مادر داده بودیم فکر می همان افسوسی که جوان برای بوسه هایی می که به دختری داده که حالا با یکی دیگر ازدواج کرده است به او می امید زیادی داشت او تصورات عجیبی درباره پول دارد تقریبا مانند تصوری که یک راهبه از عشق مشروع دارد با وجود اینکه ها خیابان را کاملا روشن کرده بودند چیزی آن پایین چشمک نمی‌زد فقط ماشین‌ها ترامواها اتوبوس‌ها و مردم بن به چشم می‌خوردند امیدوار بودم که سکه روی سقف تراموا مانده باشد و یکی آن را در ترمینال ترامواها پیدا کند می توانستم خودم را در آغوش کلیسای پروتستان بیاندازم ولی وقتی کلمه آغوش به مغزم رسید سرتم شد و لرزیدم می توانستم خودم را روی سینه لوتر بیاندازم ولی در آغوش کلیسای پروتستان نه اگر قرار بود تظاهر کنم دوست داشتم تظاهری موفق باشد که بتوانم بیشترین لذت ممکن را از آن ببرم تظاهر به کاتولیک بودن لذتش بیشتر بود چش ماه خودم را کنار می کشیدم و بعد آنقدر به مجالس شبانه وعظ زومرویلد می رفتم که مانند زخمی پر از میکروب عقاید کاتولیکی در وجودم وول بزند. ولی با این کار شانس حمایت پدر و امکان امضاء شدن چک غیر نقدی در یکی از دفاتر زغال سنگ را از دست می دادم شاید مادرم بتواند دستم را توی کمیته مرکزیش بند کند و به من این امکان را بدهد که نظریه های نجادیم را به اطلاع همه برسانم آن وقت به آمریکا سفر می‌کنم تا در کلوب زنان به عنوان نمونه زنده ندامت جوانان آلمان سخنرانی کنم فقط یک مشکل وجود دارد من از چیزی پشیمان نیستم هیچ چیز با این حساب باید تظاهر به ندامت کنم. می توانم برایشان تعریف کنم که خاک زمین تنیس را به صورت کالیک پاشیدم و در محل تمرین تیراندازی زندانی شدم و بعد دادگاهی شدم. دادگاهی متشکل از کالیک، برول و لوونیش. ولی تعریف این ماجرا آغاز یک تظاهر است. من نمی توانم این لحظات را تشویق کنم و آن را مانند نشان افتخار به سینه هم بزنم. این روزها همه نشان افتخار به سینه و از خود به عنوان قهرمان یاد میکنند. چسبیدن به گذشته ی افتخارامیز تظاهر است چون هیچ کس لحظات را نمیشناسد. لحظاتی مانند اینکه چگونه هریته با کلاه آبیش توی تراموان نشسته بود و رفت تا از خاک مقدس آلمان در لورکوزن در مقابل یانکی های جهود دفاع کند نه مطمئن ترین نوع تظاهر که بیش از همه برایم هم لذت بخش است سپردن سرنوشتم به دست کاتولیک هاست جایی که تمام کارت ها برنده اند. نگاه هم از روی بام های دانشگاه لغزید و بر روی درختان پارک جنگلی کوچکی که در آن حوالی بود افتاد آنجا آن پایین روی تپه های بین بن و گوتسبرگ ماری زندگی میکرد عیبی ندارد؟ همین که می توانستم نزدیکش باشم خوب بود خیال ماری از اینکه من دائم در سفر هستم راحت بود ولی باید بداند که ممکن است هر آن با من روبرو شود و هر بار از دیدن من سرخ شود و هر بار یادش بیاید که زندگیش سرشار از خیانت و زناست و اگر من او را با بچه هایش ببینم و آنها پالتوی بلند روشن یا پالتوی کوتاه بتن کرده باشند ناگهان باید بچه ها به نظرش لخت بیایند. خانم محترم در شهر نجوا می که شما بچه هایتان را لخت می گردانید. این دیگر زیاد روی است و شما خانم محترم یک نکته کوچک را فراموش کرده اید یک نکته حیاتی را وقتی گفتید که فقط یک مرد را دوست دارید شما یک میم را جا انداختید شما باید می مردم همیشه توی تاریکی خانم محترم در سینما و کلیسا در اتاق نشیمن تاریک به موسیقی کلیسا گوش می دهید. ترسان از روشنایی زمین های تنیس خیلی حرف میزنند، از اعتراف سی دقیقی و اعتراف چهل دقیقی شما حرف میزنند. نفرتی در پرده مانده در صف منتظران دیده می شود خدای من آخر چه برای اعتراف دارد زیباترین، مهربانترین، منصفترین مردها را دارد مردی درستگار، یک دختر کوچولوی دوست داشتنی و دو ماشین بی صبر و عصبی در پشت پرده، گفتگوی بی پایانی عشق زناشویی، وظیفه و محبت در جریان است که سرانجام به این می میرسد حتی ایمانتان دست خوش تزلزل نیست؟ پس چکم دارید دخترم؟ تو نمیتوانی آن را به زبان بیاوری؟ حتی نمیتوانی آن را از خاطرت بگذرانی؟ چیزی که من میدانم تو یک دلغه کم داری؟ اسم رسمیش هنر کمیک است و به هیچ کلیسای مالیات نمیدهد آخ... لنگان لنگان از بالکن به هم همم رفتم که خود را گریم کنم این اشتباه بود که مقابل پدرم گریم نشده ظاهر شدم ولی آمدنش غیر منتظره بود او همیشه مشتاق بود که عقیده واقعی، صورت واقعی و من واقعی هم را ببیند بیاید ببیند او همیشه از ماسک های من، از بازی های من و از آن چیزی باهم داشت که وقتی گیریم نکرده بودم آن را غیر جدی می نامید. چمدان گیریم هم هنوز در بین راه بخوم و بون بود وقتی توی در درگنجه کوچک سفید دیواری را باز کردم دیگر دیر شده بود باید قبل از باز کردنش فکر می کردم که چه چیزهای مرگاوری توی آن است لوله ها و غوتی ها های عطر و ماتیکهای ماری هیچ کدام در گنجه نبود اینکه هیچ اثری از ماری آنجا نبود همان قدر بود که یک لوله یا یک قوطی از او در گنجه پیدا می کردم را برده بودند شاید مونیکا از سر دلسوزی آنها را جمع کرده و گوشه گذاشته بود خودم را در آینه نگاه کردم چشمانم خالی بود برای اولین بار احتیاج نداشتم نیم ساعت به خود نگاه کنم و تمرین صورت کنم تا چشمهایم خالی شود صورتم صورت کسی بود که خودکشی می کند و وقتی شروع به گریم خود کردم حس یک مرده را پیدا کرد به صورتم وازلین ماریدم لوله خوشک شده پودر گریم را پاره کردم و هر چه آن بود را به صورتم ماریدم و با عجله سفیدش کردم بدون حتی یک خط سیاه بدون یک لکه سرخ تمام صورت سفید حتی ابروهایم را هم سفید کردم موهایم روی آن صورت سفید مثل کلاه گیس به نظر می آمد لبهایم تیره و تقریبا بنفش بود چشمان آبی روشن خالی چون آسمانی سنگی مثل چشمان کاردینالی که نمیخواهد اقرار کند که مدت هاست ایمانش را از دست داده من حتی از خودم نترسیدم با این صورت می توانستم ترقی کنم می توانستم تظاهر کنم کاری که با وجود احمقانه بودنش از بقیه دوست داشتنی تر بود کاری که ادگار وینکن به آن اعتقاد داشت با وجود احمقانه بودن تظاهر شرافتمندانه ترین شکل دروغگویی است از میان بدیهای کوچک، کوچکترین آنها، یعنی به جز رنگهای سیاه و قهوهی سیر و آبی، رنگ دیگری وجود داشت، راه گریزی که اگر به آن سرخ می در ارزشش اغراق کرده بودی، خاکستری بود با سایه لطیفی از سرخی فلق، رنگی غمناک برای کاری غمناک، رنگی که مناسب دلغکی بود که مرتکب بدترین گناهی شده بود که یک دلغک میتواند تواند مرتکب شود برانگیختن احساس هم دردی مشکل این بود که من ادگار وینکن را نمی توانستم گول بزنم و در برابرش به چیزی تظاهر کنم من تنها شاهدی بودم که می او صد متر را در ده و یک دهم ده ثانیه دویده و او هم یکی از معدود آدم هایی بود که مرا همانطور طور که بودم می شناخت و آن را پذیرفته بود. او به آدم های کمی اعتقاد داشت. آخر دیگران به چیزهای غیر از انسان اعتقاد داشتند. به خدا، به پول در مفهوم انتظائیش. به چیزی مثل دولت و آلمان. ولی ادگار نه. آن شب که سوار تاکسی شدم او را به اندازه کافی ناراحت کرده بودم الان که به آن فکر می کنم تأصف می خورم باید جریان را برایش روشن میکردم. کردم غیر از او به هیچ کس دیگر هیچ توضیحی بدهکار نیستم از جلوی آینه رد شدم از چیزی که در آن آینه دیده بودم خوشم آمد و حتی برای یک لحظه فکر نکردم چیزی که در آن بود خودم بودم آنچه در آینه بود دلغک نبود. مردهای بود که نقشه مرده را بازیم کرد لنگان لنگان خودم را به اتاق خواب رساندم از ترس دیدن لباسهای ماری هنوز به آنجا نرفته بودم بیشتر لباسها را خودم برای او خریده بودم و اگر نیاز به تغییر داشت خودم با خیاط درباره آن صحبت کرده بودم او به جز قرمز و سیاه هر رنگی میتواند بپوشد حتی میتواند بدون اینکه خسته کننده به نظر بیاید خاکستری بپوشد صورت و سبز هم خیلی به او میآید من شاید با این ذوق و که دارم می توانستم در رشته طراحی لباس های زنانه پول خوبی در بیاورم ولی برای کسی که تک همسر است و هم هم نیست این کار شکنجه وحشتناکی است مردان چکی دست زنانشان می دهند و توصیه می مطابق مد لباس بخرند اگر رنگ بنفش مد باشد همه بنفش می پوشند. و وقتی در یک مهمانی تمام زنانی که سری توی سرها دارند با لباسهای بنفششان پرسه میزنند مجلس به شکل مجموعه ژرال و راهبه هایی در میآید که با زحمت زیاد از گور بیرون کشیده شدهاند. زنانی که بنفش به آنها بیاید خیلی کمند ماری می بنفش بپوشد وقتی من هنوز در خانه خودمان بودم پوشیدن مطابق مدروز باب شد و تمام زنهای بیچارهای که شوهرانشان به آنها امر میکردند در شعن آنها لباس بپوشند در دوره مادرم با لباسهای مدروزشان پز میدادند دلم به حال بعضی از آنها میسوخت به خصوص زن قد بلند و چاق یکی از این رو اسای بیشمار. دلم خواست به طرفش می رفتم و چیزی مثل یک رومیزی یا یک پرده را به عنوان شنل میر و شفقت دورش می پیچیدم. شوهرش این سگ احمق نمتوجه می شد و نه چیزی می دید و نمی شنید. اگر یکی از این هم جنسگره پیراهن خواب صورتی را مد می حاضر بود زنش را به آن لباس به بازار بفرستد و همین جناب رئیس روز بعد در برابر 150 کشیش پروتستان در شناخت جسمانی در زن و سخنرانی کرد. در حالی که نمیدانست زانوهای زنش کلوفتر از آن است که بتواند لباسی به این کوتاهی بپوشد. در گنجه لباس را به سرعت باز کردم که از دست آین فرار کنم. هیچ کدام از لباسهای ماری در گنجه نبود هیچ کدام حتی یک قالب کفش یا یک کمربند که گاهی زنها آن را جا می گذرند. حتی بوی عطری که میزد هم به سختی به مشام می رسید کاش محبت می کرد و لباسهای مرا هم با خودش می برد آنها را می بخشید. یا آتش میزد. ولی لباسهای من هنوز آنجا آویزان بود یک شلوار چهار خانه که من هیچ وقت نپوشیده بودم یک کابشن اسکاتلندی سیاه چند کراوات و جفت کفش آن پایین روی جا کفشی قرار داشت در کشوها همه چیز می توانستم پیدا کنن همه چیز دکمه سرد است و تلق سفید یقه پیراهن جوراب و دستمال. باید به فکرم می رسید جایی که صحبت از مالکیت است مسیحیان بیچون و چرا ادالت را برقرار می کنند لازم نبود که شوها را باز کنم شک نداشتم که هرچی متعلق به من بود آنجا بود و هر چه مطلق به او بود سر جایش نبود چقدر مهربانی کرده بود اگر ات آشغالهای مرا هم با خودش می برد. ولی در گنجه لباس لباسمان ادالت به شکل مرگ باری رعات شده بود مطمئن ماری وقتی چیزهایی که مرا به یادش میانداخت جمع میکرد احساس هم دردی کرده و بدون شک اشک هم ریخته بود از آن اشکهایی که زنان در فیلم وقت طلاق می ریزند و میگویند دورانی که با تو بودم را هرگز فراموش نمیکنم. گنج مرتب و تمیز حتی یک نفران را گردگیری کرده بود بدترین چیزی بود که او می برایم بگذارد. مرتب مجزا، اساسش هم از اساس من طلاق گرفته بودند مثل کسی که یک عمل جراحی موفقیت آمیز را پشت سر گذاشته باشد. هیچ چیزی از او نمانده بود. حتی یک دکمه بلوز هم نیفتاده بود در را باز گذاشتم که چشمم به آینه نیفتد لنگان لنگان به آشپزخانه رفتم بطری کنیاک را توی جیبم گذاشتم به اتاق نشیمن رفتم روی کاناپه دراز کشیدم و پاچه شلوارم را بالا زدم زانویم خیلی ورم داشت اما همین که دراز کشیدم دردش کمتر شد در پاکت هنوز چهار نخسیگار بود یکی از آنها را آتش زدم در این فکر بودم که کدام بدتر بود اینکه ماری لباس هایش را اینجا میگذاشت یا اینطور جمع کردن همه چیز و نگذاشتن یک یادداشت که دورانی که با تو بودم را هرگز فراموش نمی کنم شاید اینطور بهتر بود با وجود این می توانست یک دکمه افتاده یا یک کمر را جا بگذارد یا تمام گنجه را ببرد و آتش بزند. وقتی خبر مرگ هنریته آمد در خانه میز قضا را میچیدند. آنها دستمال سفره هنریته را که به نظرش هنوز نیازی به شستن نداشت داخل حلقه زرد دستمال صفر روی بوفه گذاشته بود و همه ی ما بی اختیار به دستمال صفر نگاه کردیم. کمی مراب آن چسبیده بود و یک لکه کوچک قهوه ای رنگ هم از سوپ یا سس روی آن دیده میشد. برای اولین بار حس کردم که اشیاء کسی که میرود یا می, می رود چقدر وحشتناک است. مادر بعد از شنیدن این خبر سعی کرد غذا بخورد. مطمئنا میخواست این را برساند که زندگی ادامه دارد یا چیزی شبیه به این بلی من خوب می دانستم که این حرف درست نیست زندگی ادامه پیدا نمی کند مرگ ادامه پیدا می کند. روی دستش زدم و قاشق سوپ خوری را از دستش انداختم به باغ دویدم دوباره به خانهی برگشتم که در آن فریاد و فقان بلند بود سوپ داغ صورت مادرم را سوزانده بود به بالا به سمت اتاق هریت هر دویدم پنجره را باز کردم و هر را دم دستم بود توی باغ ریختم غوتی های کوچک و لباس عروسک کلا کفش کیف و وقتی که شوها را باز کردم لباس زیرش را دیدم و در میان آنها چیزهای کوچک عجیبی که مسلما برایش با ارزش بود خوشه های خشک شده سنگ گل که کاغذ و یک بست نامه که با روبانی صورتی بسته شده بود کفشت نیست، راکت، چیزهای یادگاری هرچه به دستم می آمد توی باغ می ریختم لعوبت به من گفت مثل یک دیوانه زنجیری شده بودم همه چیز آنقدر سریع و ناگهانی اتفاق افتاد که هیچکس نتوانست جلویم را بگیرد تمام ها را پای پنجره دمر کردم و به گاراژ دویدم و مخزن یدکی بنزین را به باغ آوردم روی وسایل حریت ریختم و آتش زدم همه را حتی چیزهای کوچکی که این طرف آن طرف افتاده بود با نوک به آتش انداختم تمام تکه پاره ها را جمع کردم تمام گل های خشک ها و دسته های نامه را جمع کردم و توی آتش انداختم به اتاق غذا خوری بیدم و دستمال سفره را با حلقش از روی بوفه آوردم و توی آتش انداختم <تصفيق> لعوبت ها گفت که تمام جریان حتی پنج دقیقه هم طول نکشید و قبل از اینکه کسی بو ببرد چه خبر است آتش زبانه میکشید. من همه چیز را در آتش ریخته بودم در این بین سر وکله یک افسر آمریکایی پیدا شد که عقیده داشت من دارم اسناد محرمانه را می پروندههای پرونده های اعضای سازمان زیرزمینی نازی گرگ های آلمان بزرگ را ولی افسر وقتی رسید که همه چیز سوخت سیاه، بدریخت و بدبو شده بود. وقتی افسر دستش را به سمت یک بسته نامه دراز کرد روی دستش زدم و باقی ی یک را روی شغله ریختم. کمی بعد مهمورین آتش نشانی با هایی که به طرز مزهکی کلوفت بود آمدند و یک نفر از پشت سر آنها فریاد زنان با صدای مزهک ترین فرمانی را صادر کرد که به عمرم شنیدهم آب بیشتر و آنها هم خجالت نکشیدند و خاکستر را به آب بستند و چون آتش به چهار چوب یکی از پنجره ها هم سرایت کرده بود یکی از آنها لوله را سمت پنجره گرفت و آب را در اتاق سرازیر کرد همه چیز در اتاق شناور شد و بعدها پارکت کف اتاق باد کرد مادر به خاطر خراب شدن کف اتاق گریه کرد و به تمام بیمه ها تلفن کرد که تحقیق کند آیا خسارت ناشی از آب است یا از آتش و اینکه شامل بیمه می شود یا نه یک جرعه از کنیاک سر کشیدم و بطری را دوباره در جیب گذاشتم و به معاینه زانویم پرداختم وقتی دراز میکشیدم دردش کمتر میشد اگر فکرم را متمرکز میکردم وقتی ورم و درد زانویم بهتر میشد میتوانستم یک جعوهٔ خالی پرتقال پیدا کنم جلوی ایستگاه راه آهن بنشینم گیتار بزنم و مرسیه ی بخوانم. بخونم. میتوانستم کلاهم، کلاه لبه دارم. آن روی پله ها بگذارم تا اگر کسی اتفاقا به این فکر افتاد که سکه در آن بیاندازد، دیگران هم جرأت این کار را پیدا کنند. من به پول احتیاج داشتم و دیگر سیگاری برایم باقی نمانده بود، بهترین شکلش این بود که یک سکه ده فنینگی و چند سکه پنج فنینگی توی کلاه بگذارم تا توجه آبران جلب شود شک نداشتم که لعو دستکم اینقدر پول برایم می آورد خودم را میدیدم با صورت سفید گریم شده جلوی نمای تیره ایستگاه راه آهن روی پله ها نشستم با یک پیراهن کشباف آبی کاپشن سیاه اسکاتلندی و شلوار چهارخانه سبز من کولی شده با وجود سر و صدای خیابان مشغول خواندن سرودهای مذهبی میشوم آنقدر آنجا مینشینم تا همسر بیوفا همراه شوهر کاتولیکش با یکی از قطارهای روم وارد شود مراسم عقد باید با افکار ناراحت کننده همراه شده باشد ماری نه بیوه بود و نه متلقه. دیگر باکره هم نبود، این را دیگر به خوبی می دانستم، زومرویلد باید از شدت نراحتی موهایش را کنده باشد، یک عقد بدون سرانداز برایش تمام زیبایی جریان را از بین می برد. شاید هم آنها برای دختران اقفال شده و هم های سابق دلغک ها قوانین دیگری را به اجرا میگذارند. اصخفی که مراسم عقد را اجرا کرده چه فکرهایی از سرش گذشته. این کار را به یک اسخف و گذار نکرده اند. ماری یک بار مرا به یکی از این مراسم عقد کشانده بود و تمام این مراسم مثل کلاه اسخفی را از سر برداشتن و گذاشتن گره زدن نوار سفید، گذاشتن اصای اسخفی بر شانه عروس نوار صورتی را به سفید گره زدن مرا سخت تحت تأثیر قرار داد به عنوان آنرمندی با روحی حساس از تکرار این سحنا خوشم می آمد. به یاد نمایش کلیدم افتادم می توانستم قدری موم تهیه کنم یک کلید را در آن فشار بدهم و در گودی به وجود آمده قدری آب بریزم و در یخچال بگذارم و چند کلید برای نمایش درست کنم مطمئنم امکانش بود که با استفاده از یختانهای سفری بتوانم هر شب برای اجرا کلیتهای یخی درست کنم کلیتهایی که در حین اجرای برنامه آب شود شاید میشد از این فکر استفاده کرد ولی ناگهان آن را کنار گذاشتم زیاد از حد پیچیده و به لوازم زیاد و اتفاقات فنی وابسته بود و اگر یکی از اهالی راین در زمان جنگ یک بار کلاهی سه یکی از کارگران صحنه گذاشته بود او در یختان را باز میگذاشت و اجرای برنامه را غیر ممکن می کرد تصمیم قبلی هم بهتر بود با صورت حقیقی هم. صورت سفید روی پلکان ایستگاه راه آهن بن نشستن، مرسی یه لورت و با گیتار روی آن چند آکورد گرفتن. کلاه دارم هم پهلویم روی پله ها بود، کلاهی که پیش از این هنگام تقلید چاپلین از آن استفاده می کردن. فقط سکه هایی که توجه آبران را جلب کند کم داشتم، یک سکه دفنیگی خوب بود، یک ده فنینگی و یک پنج فنینگی بهتر ولی از همه بهتر سه سکه بود یک ده فنینگی یک پنج فنینگی و یک سکه دو فنینگی مردم باید می‌دیدند که من یک متعصب مذهبی نیستم که صدقه کوچک را رد کنم و هر چیز بیمقدار. حتی یک سکه مسی کوچک با روی باز پذیرفته میشود. بعدن یک سکه ی پنجاه فنینگی یا یک مارکی هم به آنها اضافه می کنم که بگویم صدقه های بزرگتر نه تنها رد نمی شوند بلکه کسانی هم هستند که چنین صدقه هایی بدهند. من حتی یک سیگار هم توی کلاه می گذارم. مطمئنن دست بردن به طرف پاکت سیگار برای خیلیها ها آسان تر از دست بردن به کیف پول است. طبیعی است که در طول روز بالاخره سرکل یک نفر هم پیدا شود که بخواهد نظم را برقرار کند و از من جواز خانندگی در کوچه و بازار بخواهد یا یکی از اعضای کمیته مرکزی مبارزه با کفر ممکن است به جنبه مذهبی کارم ایراد بگیرد اگر کسی از من جواز بخواهد یک تکه مقوا کنارم میگذارم و رویش با زغال نویسم خودت را با شنیر گرم کن این جمله را هر بچه می شنست. بعد با گچه قرمز زیر شنیر خط می کشم شاید هم به نشانه اسم کوچکم یک ه جلوی آن بنویسم البته این کارت ویزیت غیر عادی است اما جلوی هر سوء تفاهمی را میگیرد و از طرفی پدرم هم میتواند بدون که خرجی برایش داشته باشد کاری برایم بکند او میتواند برایم جواز آوازخانه دورگرد بگیرد فقط باید به شهردار تلفن کند یا این را وقتی با او در کلوب مردان اسکات بازی میکند بخواهد اگر او این کار را برای من بکند میتوانم با خیال آسوده روی پلکان اسکاب بنشینم و منتظر قطار بمانم و اگر ماری توان این را داشته باشد که بدون در آغوش کشیدن من از کنارم بگذرد یک راه دیگر باقی میماند خودکشی بعدها فکر خودکشی رو از سرم بیرون کردن به یک دلیل که ممکن است خودپسندانه به نظر بیاید من میخواستم برای ماری زنده بمانم اگر او از تسوفنر جدا میشد آن وقت ما در موقعیت آرمانی بزوویتس قرار میگرفتیم او میتوانست بدون ازدواج زن من بماند چون از نظر کلیسا او نمیتوانست از تسوفنر طلاق بگیرد. آن وقت فقط لازم بود که بگذارم تلویزیون کشفم کند شهرت جدید به دست بیاورم و کلیسا چشمانش رو هم بگذارد من که تقاضای ازدواج کلیسایی با ماری نداشتم و آنها هم دیگر احتیاجی نداشتند با توپ کهانه هنری هشتام به سویم شلیک کنند احساس بهتری داشتم ورم و درد زانویم کم شده بود ولی سردرد و مالی خولی بود این دو درد چنان با من عجینند که فکر مرگ. یک هنرمند همیشه مرگ را کنار خود دارد. مثل یک کشیش خوب که کتاب دعایش را. من دقیقا می که بعد از مرگم چه خواهد شد. مقبره چند طبقه ی خانوادگی شنیر دست از بر نخواهد داشت. مادر گریانم ادعا می کند که او تنها کسی بود که مرا درک می کرد. پس از مرگ من، برای همه تعریف می کند که هانس من چطور انسانی بوده است. امروز شاید هم تو ابد او سخت اعتقاد دارد که من شهوت پرست و پول دوست هستم. او خواهد گفت: « بله هانس ما با استعداد بود فقط متاسفانه خیلی شهوت پرست و پول دوست. متاسفانه کاملا بدون انزباد ولی باهوش و با استعداد زمر خواهد گفت. شنیر خوب ما او پسر خوبی بود عالی متاسفانه او احساسات غیرقابل درک زده مذهب داشت و متافیزیک را حس نمی کرد برو ترت خواهد خورد که چرا مجازات اعدامش را نتوانست زودتر به کرسی بنشاند که مرا در ملع عام دار بزنند برای فرد بویل موجودی تکرار نشدنی خواهم بود بدون هر گونه نتیجه و جایگاه اجتماعی کینکل از سمیم قلب گریه خواهد کرد و از شدت گریه تکانهای سخت خواهد خورد اما دیگر خیلی دیر شده است مونیکا زیلفز چنان شیونی راه خواهد انداخت که گویی بیوه من است و افسوس خواهد خورد که چرا زودتر نیامده تا برایم عملت قارچ درست کند ماری ماری باور نخواهد کرد که من مردم او تصوفن را ترک کرد از هتلی به هتل دیگر می رود و سراغ مرا را می گیرد پدرم داغدار و پشیمان خواهد شد که چرا هنگام رفتن دست کم مخفیان چند اسکناس روی میز جالباسی نگذاشت کارل و زابینه گریه خواهند کرد بی و این به نظر دیگر شرکت کنندگان در مراسم زشت و نپسند می رسد زابینه یواشکی دستش را توی جیب پالتوی کارل خواهد کرد چون باز دست مالش را فراموش کرده. ادگار خود را موظف می داند که گریش را نگه دارد و شاید پس از پایان مراسم تدفین یک بار دیگر در باغ خانه ما صد متر بدود تنها به قبرستان درگردهد و روی سنگ قبر هنریته یک دسته بزرگ گل رز بگذارد هیچ کس غیر از من نمی داند که او آشق هنریته بود هیچ کس نمی‌داند که نامه‌های کرده که من سوزاندم همه در پشت پاکت در محل نام فرستنده حروف ا و وی را داشتند و من آنها را سوزاندم تا کسی از رابطه ی آنها با خبر نشود من یک سر دیگر را هم با خود به گور خواهم برد من یک بار دیدم که مادر در زیر زمین پنهانی به انبار خاربار رفت یک برش کلوفت ژامبان برید و آن را سر پایی آن پایین خورد. شتاب آنو با ولع این کار حتی مشمعز کننده نبود فقط غیر منتظره بود. دیدن این سحنه بیش از این که تنففر باشد رقت بود. من بدون اجازه به زمین رفته بودم که در انبار چمدانها دنبال توپای کهنه تنیس بگردم و وقتی صدای پای او را شریدم چراغ را خاموش کردم. دیدم که شیشه مربای با سیبر سیب را از روی قفسه برداشت و دوباره آن را سر جایش گذاشت فقط حرکات منقطع آرنجش را می دیدم و بعد برش جامبون لوله کرده را توی دهانش چپاند من این را هیچ وقت برای کسی تعریف نکردم و هرگز نخواهم کرد این راز با من در زیر یک سنگ یک سنگ مرمر در مغبر یشنیر به خواب خواهد رفت من به شکل عجیبی با تمام تجربه های تلخی که به آنها داشتم از هم آن خودم خوشم میآید از انسان ها... وقتی یکی از هم نوعانم غمگین میرد می شوم. حتی سر قبر مادرم هم گریه خواهم کرد سر قبر درکم پیر اختیار از کف داده بودم و بیل بیل خاک روی تابوت می ریختم و می شنیدم که از پشت سر یکی زیر لب می گوید این کار زشته است ولی من هم چنان بیل می زدم تا اینکه ماری بیل را از دستم گرفت دیگر نمی خواستم دکان را ببینم نمی خواستم یادگاری از او داشته باشم ماری که به خودش مسلط بود دکان را فروخت و پولش را برای بچه های من کنار گذاشت دیگر می توانستم بدون لنگیدن به راه رو بروم و گیتارم را بیاورم گیتار را از جلدش درآوردم در اتاق نشیمن دو مبل را رو به روی هم گذاشتم تلفن را کنار خودم کشیدم و دوباره دراز کشیدم و گیتار را کوک کردم صدای تارهای گیتار حالم را جاه آورد و وقتی شروع به خواندن کردم احساس آرامش کردم زمزمه هایم را با گیتار هم آهنگ کردم از این جریان خوشم آمد گیتار در دست کلاه در کنار با صورت حقیقی هم. منتظر قطاری خواهم ماند که ماری را با خود از روم می آورد وقتی با پول از پیش ادگار برگشتم ماری به من گفت که ما هرگز از هم جدا نخواهیم شد تا اینکه مرگ ما را از هم جدا کند من هنوز نمرده بودم خانم وینه که همیشه میگفت هر کس میخواهد هنوز زنده است هر کسی غذا به دهانش مزه کند هنوز از دست نرفته من میخاندم و گرسنه نبودم نمیتوانستم تصور کنم که ماری در یک جا بند شود ما همیشه با هم از شهری به شهری دیگر و از هتلی به هتلی دیگر در سفر بودیم و وقتی برای چند روز جایی میماندیم همیشه میگفت چمدانهای باز مثل دهنهای گرسنه به من خیره شده هند. ما دهان چمدانها را میبستیم و راه میافتادیم. اگر زمانی به ناچار برای چند هفته مجبور به ماندن در جایی می شده ایم، ماری شهر را چون شهری که از زیر خاک بیرون آورده باشند قدم به قدم میگشت. به سینما و کلیسا میرفت. روزنامه های غیر جدی میخواند و منچ بازی میکرد. آیا واقعا میخواست در مراسم رسمی کلیسایی که در آن به تصبحن ردای شعالیه ی سنجان می دادند همراه کاردینال ها و رؤسا باشد و در خانه با دست خودش لکه های شم رو از ردای شوهرش پاک کند؟ این موضوع البته به سلیغه هر کس مربوط می شود ولی ماری سلیغه تو این نیست بهتر است. دل به که لا مذهبی ببندی که تو را به از خواب بیدار می کند در صورت لزوم برای تاکسی می گیرد تا به مراسم دعای کلیسا برسی و نیازی نیست بلوز کشباف آبی رنگش را بشویی